گر باده به کوه وزنی رقص کند، ناقص بود آنکه که باده را نقص کند، از باده مرا توبه چه میفرمایی روحیست که او تدبیت شخص کند. گه گه دل من در این قفص تنگاید، از همرهی آب و گلش ننگاید، گفتم که مگر بشکنم این زندان را، پایم زر به شر برسنگاید. گویند که ماه رمزان گشت پدید، من بعد به گرد باده نتوان گردید، در آخر شعبان بخورم چندان می، در رمزان مست بیفتم تایید.